سلام این سوم پادکست فیمنیزم روزمره است جایی که ما سرمی کنیم صدامون رو از سانسور بلندتر کنیم من سبا هستم و من نسری نفزالی امروز تصمیم گرفته بودیم بعد از یک مدت تقریبا طولانی که هی فکر می کردیم راجع به چی صحبت بکنیم امروز تصمیم گرفتیم یعنی خیلی وقت بود که به این فکر می کردیم ولی بالاخره خواستیم که عملیش بکنیم امروز و مسئله حرف بزنیم حالا اتفاقات متفاوتی هر روز چه توی ایران چه توی جاهای مختلف دنیا میفته که باعث میشه آدمای مختلفی راج به جاب اظهار نظر بکنن دوباره این بحث اون تاپیک بیاد سلام این سوم پادکست فمننیسم روزمره است جایی که ما سر میکنیم صدامون رو از سانسور بلندتر کنیم من سبا هستم و من نصریین افزیم امروز تصمیم گرفته بودیم بعد از یک مدت تقریبا طولانی که هی فکر میکردیم راجع به چی صحبت بکنیم امروز تصمیم گرفتیم یعنی خیلی وقت بود که به این فکر میکردیم ولی بالاخره خواستیم که عملیش بکنیم امروز و راجع به مسئله هجاب حرف بزنیم حالا اتفاقات متفاوتی هر روز چه توی ایران چه توی جاهای مختلف دنیا میفته که مهم. باعث میشه آدم های مختلفی رو به هجاب اظهار نظر بکنند دوباره این بحث این تاپیک بیاد توی سرخط خبرها یا آدم ها بنویسن جبهش بنویسند برحال مسئله های متفاوتی پیش میاد که اخیرا هم مسئله حجاب سر کردن نخست وزیر نیوزلند بود که آره. ما هم خیلی بهش پرداختیم توی فیمه سن روزمره و خیلی های مختلفی رو دوباره ایجاد کرد که ما فکر کردیم واقعا هنوز خیلی خیلی کار داره که روی هجاب حرف بزنیم و یه سری برداشت های غلط تاریخی یا اجتماعی و فرهنگی رو در موردش صحبت کنیم و اگه بتونیم تصدیح کنیم ولی حالا این ما فکر کردیم که از کجا بحث رو شروع بکنیم و فکر می‌کنم که به این نتیجه با هم دیگه رسیدیم که نصرین تو میخواستی واقعا بیا یه هزار عقب تر از اول اصلا به ماجرا نگاه بکنی امه. شاید جایی چون حداقل توی فرم پادکست راجبش اونطوری صحبت نشده باشه که کسی بیاد بگه از اول که اصلا ماجرا چیه این اصلا خود این حجاب اصل حجاب مسئله حجاب به معنی کانسپتی اصلا از کجا میاد حالا خصوصا توی جامعه ما دیگه یعنی تو با کانٹکست ایران بهش فکر بکنی این حجاب یک مسئله بسیار بسیار چند بعدی و پیچیده است و یکی از کلاماتیه که واقعا نه تعریف واحدی داره نه معنای واحدی در طول تاریخ داشته نه شکل واحدی داره خیلی خیلی تغییر کرده در طول تاریخ برای این ما وقتی که بخواییم در مورد صحبت کنیم اصلا نمیتونیم بدون پرداختن به تاریخچش در موردش حرف بزنیم یعنی اگه که یک نفر در ایران بخواد در مورد حجاب حرف بزنه حرفاش یه جوری برداشت میشه و باش برخورد میشه و اگه همون حرفا رو بیاد مثلا تو آمریکا بزنه یک جور دیگه برخورد میشه بره تو مصر بزنه یک جور دیگه برخورد میشه برای اینکه برداشت مردم این جوامع با هم فرق میکنن اگه همین حرف رو ست سال پیش کسی زده باشه یا ست سال بعد کسی بزنه باز ممکنه بسیار متفاوت باشه به همین دلیل که البته خیلی از مفاهیم جوامع بشری با این واژوچار هستن ولی ما بعد در مورد حجاب که به هر حال مسئله بسیار جدی شده مسئله هم سیاسی هم حقوق بشری هم مسئله حقوق زنان هست ما باید حتما اینا رو در نظر بگیریم وقتی در مورد حجاب حرف می‌زنید بنابراین ما فکر می‌کنم خیلی لازمه که ما به تاریخچه حجاب بپردازیم حالا اگه موافق باشین من با یک در تعریفی از هجاب شروع کنم و اینکه خب اولین چیزی که ما در موردش میتونیم صحبت کنیم اینکه خب کلن هجاب به چه است و بعد حجاب به هجاب اسلامی برسیم خب کلمه هجاب ما الان به صورت مثلا هجاب که H-I-J-A-B اگه بزنیم همین هجاب اسلامی رو میاره و هیچ حجاب دیگری رو نمیاره ولی ویل یا مثلا در واقع دیگه ای که به معنی پوشیدگی باشه پوشیدگی سر یا بدن باشه در ادیان دیگه هم بوده و هست و خب در در طول تاریخ انواع مختلف از این هجاب برای زن وجود داشته و انواعی هم برای مردم وجود داشته ولی خب با, با, کار با کارکرت های مختلف ما برای اینکه که خیلی بست گسترده نشد چون میتونه خیلی خیلی گسترده باشه این بست میایم به اون هجابی که در واقع شبیه تر هستش به حجابی که در اسلام ایجاد شد و در حال حاضر ما داریم اون رو میپردازیم بهش که بیشتر مفهوم طبقاتی داشته به این معنی که هر در زمانی که خب خیلی تهیه لباس مشکل بوده دشوار بوده و خیلی هزینه زیادی داشته و گران بوده کلا چه زن، چه مرد هرچی لباس بیشتری داشته لباس قیمتتری نشان دنده این بودی که از طبقه بالاترری هست. حالا زن ها اگه که این لباس بیشتری داشتن و پوشیده تر بودن کمتر با جامعه در ارتباط بودن باز این نشاندنده طبقه بالای اون خانواده بود بربراین یک جدای طبقاتی و، یک در واقع تقسیم بندی طبقاتی بود بین اشراف و طبقات حالا فقیرتر که این رو یک منزلتی میدونستن که اگه یک زنی صورتش رو کسی نبینه اندامش رو مردای دیگه نبینن و در واقع طبقه حالا اون مفهوم قدیمی در دسترس نباشه زنای عادی برای اینکه بخواهن کار کنن یه لباس ساده میپوشیدن که بتونن دلداشن راستشن برن، کار انجام بدن و در دسترس مردا بودن بهشون دست دسترازی میشد و همه اینها ولی زنه در طبقه بالا انتفاق حالا منش نمیاد. این بگم می اولن خب اصلا نیاز نیست که اشاره بکنیم که این خودش چقدر مها ها رو مثلا همین این از ساختدار مهالاری و همه اون جامع های پدر ساللاری که در حال شک گرفتن بوده همه این از همه اون میاد. ولی این مسئله این اینکه اصلا ما ذرم باید نگاهمون متفاوین یعنی ساختارهای اجتماعی متفاوتتر بوده یعنی مثلا ما شاید فکر بکنیم که نه مگه شده که یعنی پس همه زنایی که کشاورز بودن یا مثلا چه میدونم کار در سطح اجتماعی شهر می‌کردن پس بهشون تجاوز می‌شده یعنی آره خیلی مم... خیلی این اتفاق خیلی روزمره تر از یعنی و... خیلی... واقعی بی... یعنی یک, یک مناسبات دیگهی در جریان بوده که فضا متفاوت بوده اینویی زر رو باید بهش فکر بکنیم فکر درسته یعنی یک پرویولیجا امت... امتیازی بوده برای بعضی زنها که بهشون دسترازی نشه که اتفاقا اینو در اسلام هم اومدن اون آیهی که وجود داره همینو میگه که شما پرگیم بر به زنانت بگو که خودشون بپوشونن که از آزار در امام باشن یعنی هم از, از این نظر که با اون پوشوندن نشون بدن که حالا اینا مسلمانند و به اون به حال محمد به یک قبیله وابسته بوده که سرشناس بوده و خب کسایی که به دین اون گراش گراش پیدا میکردن هم مثلا یک حالتی داشتن که در تحت حمایت اون قرار می گرفتن حالا من برمیگردیم به این که حالا در اسلام چه اتفاقی افتاد خب می دونیم که اسلام بسیاری از احکامش در ادامه دین یهودیته و در یهودیت هم خب ما می دونیم که زنها سرشون رو می پوشونن و در واقع پوشیدگی بدن بخش مهمی است که هنوز هم زنای یهودی زنای زنها یهودی هنوز اینا رو رعایت می و وقتی که اسلام اومد تا حدی این رو تثبیت کرد ولی نه به اون شدت و حدتی که الان در موردش داره صحبت میشه و گفته میشه حالا به اون بر میرسیم در ادامه در, در واقع تعریفی که توی قرآن شده اونطور که گفتم بحث اولش در مورد اینه که به طور واضح گفته که سینه هاتون رو بپوشونید یعنی که حالا مثلا این به عنوان در از سر حرفی زده نشده یینو حرفای هستش که در واقع مفسران میزنن من اینجا نظر فمینیستی ندارم در مورد بحثهای قرآنی حالا این در واقع برداشت ها و نظرات که در مورد این هست این هست که در واقع پیامبر اینو برای همسران پیامبر گفته حالا همسران و دختران پیامبر و در واقع برای این که تفاوت بین زن مسلمان باشه و زن های دیگه زنهای دیگه هم حالا بیشتر از اون برده ها و کنیز هایی که اون موقع بودن و خب کنیزها ها عملا یک نوع برده جنسی هم حساب می شدن چون که با رابطه باهاشون یک چیزی بوده که هر کسی در جنگ اگه اسیر می کنیز می شده و کسی که کنیز می شده در واقع برده جنسی بوده و هر اتفاق یعنی هر رابطه جنسی باش آزاد بوده حالا در مورد بحث اینکه اجباری بودنش و الزامی بودنش در اسلام اول اینکه حجاب از واجبات و از اصول دین اسلام نیست یعنی کسی که اگه حجاب قبول نداشته باشه از مسلمانی خارج نمیشه ما 5 تا اصول دین داریم و 10 تا فروع دین که شیعیان دارن و هیچ کنومش حجاب شام... شاملش نیستش یعنی شما میتونین که به اجاب اعتقاد نداشته باشین و مسلمان باشین این یعنی به تعریفه اصول و دین اینه بعد در مورد اینکه حالا این که مثلا حرام هر... یعنی گناه هست یا گناه نیست تقریبا اغلب علماء اسلام گفتن که حجاب الزامیه یعنی زن مسلمان باید حجاب داشته باشه و ولی در مورد اجباری بودنش البته در مورد شکل هاشم هم متفاوته یعنی خب یه مقدار تغییرات وجود داره در مورد اینکه حالا چه شکلی از حجاب باشه که اونم باز تا حد زیادی روش اشتراک هست ولی در مورد اجباری بودن و اینکه حکومت اونها اجباری کنه تقریبا اغلبشون به چنین چیزی اعتقاد ندارن یعنی حکومت رو مثلا اینکه در مورد نماز و روزه که اتفاقا بخش از فروی دین هستن هم اعتقاد به اجباری کردنش ندارم چه برسه به هجاب بلی خب ما میبینیم با سری ها و مقلته های الان دارن میگن که چون این بحث اجتماعی هست ما باید این رو اجباری کنیم اینا. که حالا اینا باز بهش میرسن بنابراین الان ما تعریف بیشتر خب یه چیزی دیگه ایم که دیگه هم هست که خب ایران که تنها کشوری که اکثریت مسلمان داره نیست و حالا هستن شد کشورهای دیگه که حکومتشون حجاب رو اجباری اعلام میکنه یا هستند حکومت های دیگه ای که حجاب بخشی از یعنی در واقع اون فرس و نیروی حکومتی قرار گرفته که هجاب ام. رو در واقع پشید باید الان فقط میشه گفت در سه کشور در دو کشور و بخشی از یک کشور دیگه حجاب اجباری شده ایران عربستان و بخشی از اندونزی یک ای ایالت هست به اسم آچه که در سال‌های اخیر اسلامگیره ها توش قدرت زیادی گرفتن متاسفانه و ما احکام خیلی شدیدی علیه زنان ببینیم که شلاق میخورن برای رابطه حالا نامحرم و رابطه های نامشروع و این در واقع تو گسترش یافتن حجاب اجباری به اونجا یه مقدار خودش نگران کننده است ولی در حال حاضر فقط ایران و عربستان دولت هایی هستن که دارن این حجاب اجباری رو اعمال میکنن و باز ایران از عربستان هم سختگیرانه‌تر چون نه تنها بر زنان مسلمان بلکه بر زنان غیر مسلمان هم این رو اجباری کرده و نه تنها در داخل کشور بلکه خارج کشور هم داره اینو اعمال میکنه و در واقع افرادی که در بین ایران و خارج از کشور در رفته آمدن اگه که کارشون به حکومت بیفته و افراد سرشناسی باشن مشکلات زیادی مواجه میشن آم، بنابراین آم، ولی بقیه کشورها اجباری توش نیست از نظر کالچر نظر فرهنگی آره ممکنه خیلی روشون فشار باشه که حتما هجاب داشته باشن ولی مجازات قانون... قانونی م... مجازات قانونی ندارن نه درست. عبزه که تو ایران هم هی جای قانون ننوشته که چرا نوشته نبود یعنی در واقع تا سالها مجازاتی که می بر اساس بندی بود که گفته بود اعمال منافی افت و چیز شبیه این بعد در واقع به صورت خیلی مشخص گفته شد که رفع حجاب در کشف, کشف یا رفع هجاب در مکانهای عمومی که باز الان طبق همین که مکانهای عمومی خارج از کشور رو هم به عنوان مکان عمومی در نظر گرفتن و مردم و حتی ماشین شما مکان ماشین ماشین بله بعد ما که حالا حتی به اونم رضایت نمیدن و خیلی وقتا به داخل ها پارتی ها حمله میکنن و میگن که مثلا اینا رو ما به جرم مثلا لاهجابی گرفتنشون بنابراین طبق هم قانون خودشون اگه عمل میکردن باز الان وضعیت مردم بهتر از این بوده و می‌دونستم تو در واقع حریم خصوصی خودشون یک آزادی داشته باشن ولی خب الان همون هم ازشون گرفته شده حالا بر برگردیم به این مسئله که تو داشتی میگفتی که حداقل همه مثلا علما یک تج... یک چیز اجماع, اجماع دارن که حجاب از حکومت باید جدا باشه حالا ولی بجز حالا حالا من ایران. یک بحث یک تفکیکی میخوام بکنم که تفکیک مفهومی بین این که یعنی حجاب چندین دلیل و کارکرد داره که تا حدی هم میشه گفت تاریخی هم هست یعنی این تقسیم بندی با این که یعنی در عین حال که یک تقسیم بندی مفهومی هست در تقسیم تاریخی هم هست یعنی شون میده در طول تاریخ حجاب تغییر ماهیت داده چهار تا تقسیم من اینجا دارم که در واقع بحث اول رو قبلا مطرح کردن به عنوان اینکه هجاب به عنوان یک مفهوم طبقاتی در امون صحبت کردیم به معنی که حجاب به این معنی نبوده که خب مثلا زنها مردا رو تحریک نکنن یا بحث اینکه یک مثلا یک بحث عبادی باشه نه اصلا بحث عبادی نبوده الان خب میگن که در واقع یک بود عبادی بهش میدن که شما برای که به خدا عبودیتت تو ثابت کنی و اینا ما الان میدونیم کسایی هستن که نماز می بدون حجاب این یک بخشی بودش بخش دوم که البته همه اینها که دارم میگم به قول ما در هم تنیده هستن یعنی نمیشه گفت یک بخشی از تاریخ فقط یکی از این مفاهیم سوار بوده روی هجاب و بقیه نبودن بنابراین هر کدوم که میگم مثلا الان بود دوام که میخواهم در مورد فرهنگ به این معنی نیستش که این در اون بره تاریخی یک بحث فرهنگی بوده هجاب و الان نیست یا مثلا در اول در پیش از اسلام فرهنگی بوده و الان نیستش بحث فرهنگی به این معنی که همون بخش مرسالاری که قرن ها و هزاره که تاریخ بشریت بعد از اینکه در طی یک فرایند تاریخی از یک جامعه حالا مادرسالار یا برابر یا هر صورت دیگه ای تبدیل شد به جامعه مرسالار اینا خیلی مهمه که من این رو میخوام بگم که با اینکه خیلی طولانیه تاریخ مرسالاری چند ساله به نسبت تاریخ بشریت که چند میلیون ساله خیلی کمه بنابراین فکر نکنیم که همیشه یه تاریخ ما مرسالاری داشتیم این نکته ای که خواستم بگم اینجا که چرا ما میگیم در زمان مرسالاری چون من بگم که kapitalism هم همینه البته <تصحنت> <تصحنت> خب در واقع از یه زمانی خب بیشتر میشه مثلا مرسالاری هم شاید از قبلش هم بوده ولی از اون زمانی که به صورت مثلا انسان ها یک جانشین شدن خب در واقع یک بخش اصلی جام، جوامع بشری شده آه. کپیتالیسم هم شاید مثلا الان فرزند ست ساله که خیلی بیشتر شده حالا میشه گفت یک زمانی اون, اون سلطهی که پیدا میکنن روی جوامع بشری اونجا اون تاریخ رو به اون اسم مثلا حالا نانگذاری میکنن که زمانی بوده که این اتفاق افتاده مثل مثلا زمان روشنگری یا زمان قرون وستا و چی داشتم میگفت می بله. این مرسالاری در واقع از زمانی که در جمعان بشری به این صورت شدید و فراگیر دیده شد خب اصلا بروز و پیدایش مرسالاری به این برمیگرده که بشری جانشین شد و من خیلی فس فوروارد میکنم که و در واقع مردان شروع کردن از زمینا رو آباد کردن زنای خونه و بچه داری و بعد مرد فکر کرد که من میخوام این بچه هایی که یعنی این ارسی که برایشون می‌ذارم زحمتی که روی این زمین می‌کشونم به بچه های خودم برسه برای من این چطوری مطمئن بشم که زنم با کسی دیگه ارتباط نداره اون زن را در یک جا در واقع محبوس میکنم اون تحت نظر من باشه من به اون نفقه میدم من به اون در واقع هزینه زندگی تامین می‌کنم و اون برای من بچه میاره و اون بچه ها من میدونم که مال خودم هستش بنابراین این لازمه اش این بود که مساله مالکیت اتفاق میفترد و, و, و از اونجا حالا بله. و خیلی چیزهای دیگه تو جاهای مختلف نراتیبه های مختلف نمیتونیم بگیم که همه جا همیشه این بوده و هستش و یا نراتیبه نراتیبه های متفاوتی بوده. اصلا همینم هم که دارم, دارم میگم در مورد اینکه که چطور مرد ساله شکل گرفت نو یک نظریه هستش که خیلی قویه ولی باز هم 100 درصد نیست یعنی که در مورد مردم همینه دیگه آره، در, آره. در نهایت چیزی نیستش که ما بتونیم 100 یعنی اون مقدار شواهدی که لازمه وجود نداره برای هیچکون از نظریه ها که بشه 100 درصد تاییدش کرد ولی به هر حال شواهد خیلی زیادی برای این مورد وجود داره و نشون میده و هنوزم ما میبینیم که کار کردش به همین صورت ادامه داره بنابراین وقتی که قرار شد مالکیت باشه مالکیت شوهر و مرد بر زن و بچه هاش این حجاب خیلی قوی شد که پوشیدگی زن و اینکه زن دیگه غیر از مرد حق نداره برای کسی دیگه ای در واقع دلبری کنه و با کسی دیگه ارتباط جنسی داشته باشه و بنابراین اگر لازم نمیخواد داشته باشه بنابراین باید پوشیده باشه این پایه و شروع این قضیه بود و خب بعدش این به این صورت برای اینکه زنها و بدنشون تحت سلطه در بیاد خب وقتی که پدر مردی بخواد با یک زنی ازدواج کنه از اون طرف میخواد که این زن قبلا. هیچ مرد دیگری رو ناییده باشه من معنی باید پدر مادر اون دختر هم اون بچه رو جوری بزرگ کنن که هیچ ارتباطی با جنس مخالف نداشته باشه معنی از بچگی باز همین جدایی جنسیتی و این باز یه نکته مهم دیگه که هجاب اصلا قابل تفکیک نیست از جدایی جنسیتی یعنی gender segregation و تفکیک جنسیتی با همیشه این دوتا با هم هستن و جزه نیست اگه کسی بگه که شما حالا باید که پارچه رو سر چی دارین این یعنی که اصلا نمیدون مفهوم هجاب چی هستش یعنی هیچ تعریفی از هجاب وجود نداره که اون جدای جنسیتی جزوش نباشه بنابراین وقتی که شما بگین که هجاب حتما این جزوشه وگرنه میشه مثلا کلاه پرستار کلاه نمی دونم ها که هیچ معنای ایدیولوژیک روش نداره و خب چرا هیچ کس با کاری نداره با کلاه کلا پلیسا چرا کسی کار نداره چرا این روز رو بذاریم ولی چرا با این روسری زنها کار داریم ولی این خیلی مهم هستش که این یه که پارچه نیستش اون تمام این چندین هزار سال تاریخچه و ایدئولوژی پشتش هست بنابراین اینجا ما ببینیم که خب از بچگی اینطور توی فرنگ های مختلف زن ها تربیت میشن یک نشانی از افافه به معنی اینکه زنی که هجاب داره زن عفیفه خب میدونیم که لزمان اینجور نیست ولی این رو پروموت به شدت روش تبلیغ میکنن و دیگه بحث دیگه اینکه شما اگه هجاب داشته باشی از آزار جنسی در امان هستی. یعنی بحث یه جورای... بحث شکلات شکلات که هم همچنان ادامه داره از اول تاریخ و خب از اون طرف برای اینکه این این بحث رو اثبات کنن همیشه اینطور بوده که اون بعضی افراد آمدانه زنایی رو که کم کمتری داشتن رو آزار میدادن که بگن شما به خاطر که حجاب نداشتین ما آزارتون دادیم یا مثلا همون زمان اوایل اسلام همینطوری بوده یا اوایل بعد از انقلاب که حجاب هنوز اجباری نشده بوده اومدند میرفتن سنگ می‌زدن به زنای بی حجاب اسید می‌پاشیدن عذیشون میکردن که اونا رو مجبور کنن که حجاب داشته باشن و میگفتن شما اگه حجاب داشتین اتفاق براتون نمیافتاد ام اون تعدادی که میگن من وقتی حجاب دارم احساس امنیت میکنم دلیلش این نیست که حجابش امنیت می... اینه که شما را مجبور کردن که فقط تحت لوای حجاب امنیت داشته باشی در که اصولا یعنی در مسئله این نیست که هجاب یک قدرت ماورات طبیعی داید. داره که به تو امنیت میده مسئله ام. اینه که ساختاری که در جا هست ساختاری که برقرار هستش فضا رو ناامن میکنه برای کسی که از این در واقع در... قانون یا از این حکم در واقع پیرو این یا تحت تحت کنترل این حکم سرباز میزنه از اینکه تحت کنترل این حکم قرار بگیره دقیقا. این نیست که حالا حجاب یعنی چادر به قوه در خودش که مثلا یک نیروی نه آره، حالا نیروی ما آزمایش های اجتماعی خیلی خیلی زیادی در مورد حجاب داشتیم از هر دو طرف کسایی که میخوان اثبات کنن حالا مفید بودن حجاب و کسایی که میخوان بگن نه اونطوری که شما میگین نیست یکی از, ای از این آزمایشا خیلی جالب فکر کنم در مصر بودش که یک مردی میاد لباس زنانه میپوشه و بخود خب دیدین که لباس پوشیده و فکر کنم صورتش هم پوشیده بود یا حالا به صورت زن بودش و آزار جنسی میبینه یعنی یک مردی که اگه حالت عادی رام برفت و خیاب آزار جنسی نمیدید با حجاب کامل زنونه آزار جنسی میبینه پس نشون میده نه این زنه به خاطر زن بودنش در آزار جنسی میبینه و به خاطر بی, بی قدرت بودنش و به خاطر اینکه تو اون جامعه عادی شده که مرد زن آزار بدن و این یکی از ازواج خیلی جالبه که همیشه من تو ذهنم هستش بعض دیگه این هستش که یعنی ما داریم اندازه فرهنگی در مورد صحبت میکنیم که چه نگرش هایی در مورد هجاب هست زنهای مسلمان زیادی هستن که به هجاب اعتقاد ندارن همچنین ما انواع هجاب بریم ما توربان داریم حالا نمیدونم دقیقا هم معنیش نمیدونم چه هم تلفظش تربن میگن حالا به انگلیسی توربان فکر کنم ما میتونیم بگیم و کلی چیزی که یه چیز فقط رو سرشون میذارن مثل یه حالت عمامه موننده شاله که در واقع روی سینه, سینه رو میگیره که مثلا زنای پاکستانی اصلا اکثرشون حجاب سر ندارن یعنی حجاب اصلیشون رو یا حالا سر و سینه با هم بیشتر احساس میکنن که باید سینه پوشیده باشه که من یه خاطره جالبی دارم اینا حجاب هم نمی که در یک کنفرانسی بود و یه خانم پاکستانی بود که لباسه خیلی قشنگی داشت و این یه شال هم همیشه روی سیناش بود و بعد شب آخر ما داشتیم میرخصید با همون اینا من یه لذه داشت گفتم این شاله تود من بندازم مثلا حالا باش برخصم یا عکس بگیرم طوری شاله رو گرفت محکم که انگار مثلا میخوای لختش کنی بعد تازه اونجا فهمیدم که این هجابشه و اصلا نمیتون درش بیاره که بده به من مثلا و بعد حال در مورد صحبت کرده ما اینا و همون حسی که مثلا یک زن محجب ایرانی وقتی بخوان ازش سریه شده ازش بگیرن بنابراین این زن کاملا سرش باز بود یغش باز بود آسینش کوتاه بود دامنش کوتاه بود ولی سینش رو پوشیده، پوشنده بود با این شال یا همین زنهای آفریقایی که مسلمان هستن یک چیزی رو سرشون میذارن و کاملا خب سینهای بزرگی هم دارن و اصلا برایشون اون قسمت اصلا نه جزوه هجابه نه سکسی حساب میشه و خیلی راحت چون که باز برمیگرده در واقع مطابقت دادم با فرهنگ خودشون که از قبل چیجوری بوده ناش. یعنی یه چیزی فقط رو سرشون میذارن تا اینجا این دو تا نمیدنم خسته کننده اگه شده نه سه نه تا نه. <تصفيق> یه بخصی دیگه که من میتونم بگم که چه نقشی داشته هجا بخش تقسیم فضای عمومی و خصوصی آره هستش آره این خیلی جالبه آره این خیلی مهمه و خیلی کارکردی بوده همیشه خیلی راحت در واقع با استفاده از این که خب زنها بعد مثلا زایمان کنن باردار میشن زایمان کنن بچه رو شیر بدن بزرگ کنن نمیدونم اینا زنا رو در واقع هول دادن به سمت فضای خصوصی و توی خونه و عشان نگاه خیلی ابزاری به بدن زدن نگاه ابزاری آره در صورتی مثلا زن... همینطوری که گفتن میلیون ها سال زنا میزایدن و بچه شیر میدادن همینطوری در حال رفتن و حرکت همه کارهای زندگیشون انجام میدادن هیچ اتفاقی نمیافتاده خیلی راحت و خیلی هم قوی بودن شما خب هرچی بیشتر کار کنی قوی تر هستی هر چی تو خونه بشینی خب ضعیفتر میشی و این چیزی که تا قبلش یک به دنیا بچه و تربیت بچه کار یک قبیله بوده و همه با هم بچه رو بزرگ می‌کردن یه دفعه تبدیل میشه به کار یک زن به تنهایی در یک خانواده درسته که تنها یعنی مجبور بوده که تمام مسئولیت‌ها رو به عهده بگیره بنابراین خب این یک جایی بوده که من ندارم می‌خوام رو این پرس بکنم به قول اینا این مسئله بچه بزرگ کردن به عنوان کار یک زن و مسئله ماجرای مالکیت روی بچه مسئله ارث مسئله مم. کانون خانواده به اون مفهوم مذهبی و به اون مفهوم مرسالانش که امروز میدونیم همه اینا یه سری برساخت های اجتماعیه یعنی خیلی از اینا رو ما به عنوان گارنتید میگیریم فکر میکنیم که اینا همیشه همینطوری بوده از مم. درستش اینه که اینطوری بشه یا طبیعیه. مسئله اینه که توی چیزای اجتماعی توی ساختارهای اجتماعی مسئله طبیعی اصلا یک چیز بیمنیه در زمین جندر هم همینه مثلا میتونیم بگیم زن بودن یا مرد بودن طبیعیه و حالا تو اگر هر جای دیگه از این به قول گفتنی رنج هستی غیر طبیعیه این مسئله امه. طبیعی اصلا یک چیز یعنی یک صفت بیمعنایه خودش غیر طبیعیه <تصح> آره خیلی غیر طبیعی. Uh, مسئله اینکه حالا در زمین قبیله بزرگ همین حتی ضربون مسئله که داریم یه چیزی میگه که uh, تو انگلیسی البته هست که It takes a village to raise child اصلش <تص> مال آفریقاست یه بیشتر یک ضربون مسئله آفریقاییه که میگه یه قبیله لازمه که یه بچه بزرگ بشه و واقعا هم اینجوری بوده یعنی فقط این چیزی نیستش که ما در اکثر جوامع و الان هم هنوز بعد جوامهی که هستش مثلا در اینویت ها این ها هنوز اینجوریه که مثلا اگه همه با هم زندگی میکنن و اگه مثلا یکی پدرش پدر کشته بشه مادر کشته بشه خیلی طبیعی بچه میره تو مثلا چیز خونه کناری با اونا بزرگ میشه و بنابراین اونطوری نیستش که مثلا یک فشاری به طور خاص رو زنا باشه که شما حتما باید این بچه رو بزرگ کنین و, و چقدر این داره نیروهای اجتماعی رو به هدر, به هدر میده دقیقا به هدر میده و خب حالا به خصوص الان که این نیروها بسیارشون روش رو سرمایه میشه نظر تحصیلی بله فقط هزینه است و بعدا اینا در واقع کاری که کاری که مثلا میشه شما ببینید از زمانی که یکی از بحث های توی جامعه شناسی بحث تقسیم کاره یعنی از یه زمانی به شریعت به این نتیجه رسیدش که خب ما اگه تقسیم کار کنیم کار بهتر انجام میشه بنابراین یه سری اومدن مثلا رفتن نجار شدن یکی اومده نمیدونم خرات شده یکی رفته بقال شده و بنابراین شما هر کسی یک کاری انجام میده ولی یک زن میاد همه این کار ها رو تنهایی هر جدا جدا هم آشپزی میکنه هم خیاطی میکنه هم بچه رو میکنه و خب طبیعیش اینه که یک یک ساعتی از, از روز مثلا حالا بچه رو بزاره مهد کودک یا یه پرستار بیاد خونه یا یه ساعتی از روز بچه بره مدرسه یا ساعتی از روز و... ولی چیزی که اینجا اتفاق میفته حالا بحثمون داره یکم آ... میره به حاشیه ولی آیا. چیزی که اینجا اتفاق میفته اینه که کار کار غیر تخصصی اون وقت میایم تعریف می‌کنیم کار تخصصی و غیر تخصصی تعریف میشه و بعد باید... ن... یعنی نتیجه گیری طبیعی اتوماتیکی که از این ساختار بیرون میاد اینه که کار زنانه کار غیر تخصصیه <متصفح> به خاطر اینکه زن همه این کارا رو میکنن ولی در نهایت در سطح اجتماع این کارو نمیکنن سرویسشون محدود به خانواده کوتاه کد خانواده است و کار در نهایت کار غیر تخصصی میشه و این استیگما تا همین امروز هم هست دیگه یعنی حتی دایره. اگر زن مردی یه کار مساوی انجام بدن کار زن، کار غیر تخصصی، تری بوده. اصلا حالا بازم باز بیشتر به حاشیه بریم به که مثلا حتی صنایعی که صنایعی که زنها رو کار میکنن، روش، صنایع دستی همیشه ارزشش کمتره خیلی از تر بوده بابا تو ارزونتر... فرشایی رالی نگاه آره، کن. که اصلا ما قصد میپک که یک فرشی رو که این همه این همه کار میشه روش، این همه دقت لازم داره، این همه ریزه کاری لازم داره، اینقدر با قیمت واقعا ناچیز. حالا اینا حالا خیلی هم حاشیه نیست بیم به خاطر اینکه ما میخوایم بگیم چطور شد که و چرا انقدر این قضیه پا پایداره، برای اینکه یک سود عظیمی توش هست برای مرسالاری مرسالاری اینجوری زنار رو وقتی فرستاده به داخل خانه همه قدرت رو در واقع به طور در داده به مردها قدرت در عرصه اجتماعی در عرصه سیاسی در عرصه اقتصادی زنها فقط در همون حدی که خب خوراک و پوشاک و سلامتشون تضمین باشه از همسر میگیرن و بچه‌ها رو باشه بحث طول و آره اونم حالا جدا کنه آره یعنی بیشتر حتی همون اندازه خدماتی که میدنم چیزی دریافت نمی کنن. حالا از جامعه که هیچی چون جامعه که اصلا خودشو موظف نمی دونه. حتی از همسرشون به هر حال این یکی از کاربورت های مهم بحث هجاب در جامعه بوده که حالا هجاب رو به طور خاص هجاب سر و بدن و همچنین تفیک جنسیتی و تفیک حوضه خصوصی و حوزه عمومی قائل شدن به این معنی که خب زن چون منشأ فساده و اما و مردم رو به تحریک میکنه اگه زن بره تو جامعه جامعه سالم نمیمونه بنابراین خب چه کاریشون ببینید تو خونه و ما میریم بیرون و این یکی از چیزای هستش که خیلی همین الان ما داریم میبینیم که جمهوری اسلامی دائم داره تبلیغ می‌کنه. می سعی می میکنه آره به یه سمتی اون تابلوئه که بنری که زده بودن که شما ترجمه ترجمه با کدوم از اینا هم هم کار باشه آلی. یه خانم سانتیمانطال بود یه خانم مثلا محجبه یعنی حالا به جواب این... درست بود هیچ کدوم <تصفيق> <تصفيق> آره جواب درست درست یکی مدو رو درست کرده بود یعنی از خانمه پرسیده بود از آقای پرسیده بود این بحث خب خب که مثلا زن‌ها سختشونه بیان تو جامعه و اینا و خودهام خب بشن تو خونه بهتره و اصلا سخت کردن همین با این حجاب ها سخت دیگه زنی که هجاب داشته ترجیح میدن اصلا بشینه تو خونه حداقل تو گرما و سرما مجبور نباشه که اینو بکشه یه بار اضافی و اینو میتونیم ما تو لباسهای زنای قریوی هم ببینیم اتفاقا یه زن لباسهای خیلی پرحجم و خیلی چند طبقه سخت سخت پوشیدن و سخت در آوردن و اینکه خب مثلا در هر جایی نمیتونستن با اون کارک مثلا نمیتونن سوار اسب بشن بعدتر سوار دوچرخه میتونستن بشن نمیدونم پشت به حال شمایه دستگاه بهخواای ویسسی با اون لباس نمیتونی باشی و برای همین شد که حالا مثلا توی قرب یک انقلاب چیز داریم انقلاب لباس داریم که اومدن گفتن که خب یه لباس های آسون شلوار رو مثلا اختداره کردن که یه انقلاب بزرگی بودش توی غرب پوشیدگی زنان و محدود, کرد، محدود کردنشون فقط به جوامه مسلمان هم ختم نمیشه و یک پلنیه که در واقع جامعه مرسالار برای همه زنان ریخته و زنان دارن سالهاس باش مبارزه میکنن همین الان مثلا میشه گفت یک جلوه جدید از حجاب کفش پاشن بلنده که مثلا خب خیلی از جاها دارن زنان اجبار میکنن کفش پاشن بلندشت باشن حالا باز دوره دور نشیم آخرین تقسیم بندی که من میخوام اینجا اشاره کنم بهش بحث جنبه سیاسی و هویتی استش که به هجاب داده شده. که این خیلی معاصره یعنی ما در از زمانی که بحث اسلامگرایی شروع شد و گروه های اسلامگرا ها تشکیل شدن که ما داریم برگشتن 1970s او اینا داریم حرف میزنیم حتی حتی جلوتر تقر... آره همین حدودن تقریبا که مثلا از, از زمان مثلا استعمار ما میتونیم به اونجا احا. برگردیم که کشورهای مستعمره وقتی که در واقع مثلا حالا فرانسه یا هولند می رفتن کشور اسلامی رو مست... استعمار می کردن به هر حال اون زمانی که این خب ساکنان این کشورها می خواستن با استعمار مبارزه کنن به طرق مختلف حالا به دلایل مختلف درست. به این سمت رفته مسئله که... مثلا هم هست دیگه حالا چون این نیروی خارجی که از یک دین و مذهب دیگه هم دیگه کاسته درسته خب ببین بحث ناموس و غیرت و اینا یه چیزه که مثلا الان ما اومدیم اینا بر ناموس ما مسلط شدن بحث دیگه این هستش که خب مثلا ما الان میتونیم ا... یعنی این حجاب اه... زنار رو پوشیدگی زنا رو به عنوان یک سمبل مخالفت چون که خب اونها اومده بودن اونجا که آم، تمام فرنگ اینا رو عوض کنند بهشون آموزش میدادند که سنیم کردند که حالا دینشون رو بعض عوض کنند در بعضی موارد و خب زبانشون عوض کنند و اینا به عنوان یک راه برای مقاومت و مخالفت میومدن هجاب رو بیشتر چیز میکردن ترویج میکردن یا بولد میکردن یا روش. کلن فعالیت های مذهبی نمازهای های جمعه آره، نماز جمعه درسته همه مسائل مذهبی رو و فرهنگیشون رو و به ویژه بحث هجاب رو Uh, یعنی میخوام بگم از اون زمان شروع شد و همی... الان هم همیتور الان بینیم مثلا شما یک تظاهراتی که میشه زن ها سر میکنن که مثلا حتی زر... سر زن های غیر مسلمون هم هجاب میکنن که خب مثلا نشون بدن مخ... اونا هم نیشون میخوام بدن ما مخالف این با اینکه که مثلا با اینکه با جهانی شدن مثلا با اینکه با فرهنگ با استر... مسلمان ها زیر سوال برده شدن یا با فرهنگ مثلا کشورها نمیخوام بگم حتی بزرگتر از این مثلا آه. از فقط برای دفاع از مسلمانان نمیگم مثلا این حجاب رو میان استفاده میکنن برای اینکه مثلا با اه یک اه تسلط مثلا آمریکا بر اقتصاد جهانی یا تسلط فولان فرهنگ بر مدیا اون آره اون پوستر معروف که این دختره یه دختره‌ای هست که پرچم آمریکا آره. رو سرش کرده آره, آره. اون خیلی جا. معروف شد دقیقاً اون توی جریان چیز بود مارچ زنان یا راهپیمایی زنان که خب خیلی معروف شد به این معنی که یعنی اون اصلا خب علیه چیز بود دیگه علیه ترامپ بود <تصفيق> ولی این هجابه یک سمبولی شد که کسای دیگه این اومدن پرچه آمریکا رو سرشون کردن به این که ما مثلا اه، اه، به میهنمون مثلا عشق میورزیم و با ترام مخالفیم و مثلا این هم که سرمون میکنیم یعنی که بهش یه چیز نشون بدیم که یک علامت این که مثلا ما تو بی خود میکنی مورد مثلا ما سمون این حرف رو میزنیم. ولی بیشتر به این که مثلا، به مخالفت کلی، یعنی یه حالت که خب از اون برای ما مخالفت مواجه شد که شما مخالفت مخالفتتون را میتونین جور دیگه نشون بدین شما وقتی هجاب سرتون میکنین، اون آه در سیگنالی که میخواییم بدین یکم ویگه یکم مبهمه برای اینکه شما باید مشخص کنین که با هجاب چه, چه نظری نسبت به حجاب. الاخره نمیشه که آدم یک چیزی رو انتخاب کنه و ازش استفاده کنه ولی در موردش ندونه یا در موردش موزهش رو اعلام نکنه که باس حالا میگم این رو در قسمت های بعدی بیشتر در موردش صحبه میکنیم اه، این اه در واقع چیزی که ما می بینیم به عنوان هجاب شده پرچم بنیادگرایی و اسلامگرایی این چیزی هستش که خیلی معاصر هستش و ما در تاریخ چنین چیزی سراغ نداریم یه چیزی بوده هر کشوری هر فرهنگی برای خودش بوده نه براش هورا میکشیدن نه چیزی نبوده که مثلا این بار سیاسی در بار سیاسی, سیاسی نه مدرن به مفهوم حالا آره معاصر دقیقه خیلی حالا در مورد جمهوری اسلامی این اتفاق افتاده خب یکی از اولین چیزهایی که جمهوری اسلامی دقیقاً اول اگر... خب کرده. ما خیلی می‌بینیم حالا امسالم ام که چه چهلو... چه انقلاب اسلامی گرده و چه اول گرده اجباری شدن هجابه... هجاب هستش و خب سال پنجاه اجباری شد yes, 39 سیونها میسال خب میشه گفت مثلا حالا از قانونی کسان 62 دو قانونش چیز شده ولی اون فرمان اجبار شدن حجاب خیلی هم اون اوایل داده شده هم پنجاب. پنجاب هفت که خب اون اون راهپیمایی بزرگی که زن داشتن در 8 مارس که در کوینسینس بوده یک هم زمانی اتفاقی بوده و اون در واقع اون تظاهرات برای 8 مارس نبوده برای مقابله با این مسئله حجاب که بود. اینو من میخوام بگم که هنوز هم که هنوزه توی تاریخ ایران اون راه پیماییه بزرگترین راه پیماییه که زنای تاریخ دقیقا. در تاریخ ایران انجام داد حالا این که یعنی میخوام این رو بگم بر... به جواب این که میگن حالا اتفاقی هم نیفتاد وقتی که این فرمان اومد کسی چیزی خیلی هم با... عادی بوده مثلا قبلشم اصلا ببینیم یه اتفاق خیلی خوبی که افتاده یک آرشیو خیلی بزرگی از اه... اه... تلویزی، رادیو تلویزیون ایران قبل از انقلاب در آمده که تلویزیون مثل من و تو و جای دیگه بیویسی و اینه دارن منتشر میکنن الان تازه حتی خود ما که فعال زنان بودیم و حال میگشتیم توی این آرشیوا الان داریم باز بیشتر اینا رو می‌بینیم و نسل جدیدم هم داره اینا رو متوجه میشه که نه بخش زیادی از جامعه کاملا با بیهجابی کنار اومده بوده اصلا جزء لایف استایل شده بوده جزء سبک زندگی افراد شده بوده افراد در همه سطح یعنی ما الان هم از همین عکس‌ها کاملا مشخص شد. بعضی عده میان چانتاژ میکنن که نه یه سری مثلا افراد طبقه بالا بودن و نمیدونم افراد طبقه خاص بودن و اینجوری بودن ولی الان میریم می ببینیم مثلا روستای فلان عکس گذاشته که مثلا تمام بعد دختر رو پسر کنار می شستن بی حجاب دیگه از روستای خب میگن بهشون زور میگفتن نه نه اصلا خب ببینیم ما فقط یه زمان خیلی محدودی رو رضا خان کشف اجابو اجباری کرد ولی این عکسا که من دارم میگم مال زمان پهلوی دومه که نه تنها اجباری نبود درش بلکه خیلی داشت با علماء رامی اومد اصلا ما بهشتی رو داشتیم که آورده بودم توی آموزش پرورش کتاب طراحی میکردش و ام تو محن... جز چی میگن چیزای آمزش پر پا... کننده های کتاب توی آموزش پر آره آره. آره یعنی نقش زیاد یعنی کاملا به روحانیون خیلی فضا داده بود بنابراین این اتفاق که توی ایران افتاد خب خیلی اینطوری نبود که بدون مقاومت باشه کاملا با مقاومت زیادی بود ولی خب یه سری خیانت به صورت واقعا اسمشو خیانت میزنم از طرف سر... از نیروهای چپ صورت همیشه این ایدئولوژی غلط به نظر من دارن که طبقات طبق، یعنی نظام طبقاتی باز ببین و اولین اولویت اونه و بعد از اون مثلا برابری جنسیتی یا هر چیزی و خیلی, خیلی این اینکه علویت بندی در زمین حقوق بشر یک چیز بیمعنیه ما با هر چیزی که ببینیم داره مخالفت مخالف حقوق انسان هست باید مخالفت کنیم حالا شما باید, باید تز... تزعیح حقوق بسیار بزرگی به عنوان حجاب اجباری میای میزاینش کنار میگین چون به طبقه رب نداره چرا تو به طبقه اولا که طبقه بسیار رب داره یعنی اصلا خودش داره زنا رو به طبقه دوم تبدیل میکنه خودش زنا رو داره به عنوان یک جنس در دو، درجه دو طبقه بندی میکنه. برای که میدونن آخه یک نگرش بسیار سطحی ما حالا اون زمان یا هر زمانی در بیشتر چخهای ما وجود داشته که خیلی حالا kapitalism مثلا اینا رو به صورت بسیار سطحی در نظر میگیرن. اصلا فکر نمیکنن که بعضی وقتا بعضی از بخش این kapitalism تونو استفاده کنن به نفع مثلا حتی زنای کارگر و بعضی وقتا برعکس مثلا از فمینیست استفاده کنه. یعنی میدونی این فلکسбилиتی این اتاحو ندارن که خب مثلا اینجوری نیست شما بگین که نه به هیچ وجه مثلا ما اصلا زنان نباید وارد مثلا فلان عرصه موت مثلا بشن چون مثلا به کپیتالیست مربوطه ولی خب از اون طرف ما می‌بینیم که یه سری زنان وارد این عرصه میشن و مثلا توانمند میشن پولدار میشن یه زنای دیگر رو میارن یعنی می‌دونن یه خورده باید چند جانب نگری رو بیشتر توی این ولی در نهایت توی اون برهه تاریخ اتفاقی که افتاد اینه که جامعه روشنفکری از زن‌ها پشتیبانی نکرد که با مم. مسئله حجاب مقاومت توی ایران بر یا مسئله قانونی شدن یا مسئله اجباری مم. شدن حجاب توی ایران مقابله بکنن یعنی در واقع زن‌ها یک جوری خودشون رو این وسط پیدا کردن این اتفاقی که خیلی توی خیلی جا افتاده توی مشروطه افتاده یعنی مثلا زن‌های بودن دلیده. که مم. خیلی تلاش کردن که مشروطیت اتفاق بیفته یا مشروطه مم. به اهدافش برسه بر حال یعنی اورگانایز کردن کارهای مت... کمپینی حالا اگه امروز بهش بکنیم کمپینی کردن ولی در نهایت کنار گذاشته شدن در نهایت وقتی که مشروطت به مم. نقطه رسید که حالا داشتن به حرف ملت گوش میدن یا تو جمهوری اسلام در مورد هجاب در مورد حجاب در نقطه ابتدای جمهوری اسلامی هم یک همچین اتفاق افتاد در نهایت زنها یک جمعیت خیلی بزرگی از کسایی بودن که میمدن تظاهرات میکردن یا برخلاف حکومت پهلوی حرف میزدادن یا هر کار یا یا اورگانایزای دیگه یا بخشای بزرگ از مجاهدا یا یا دیگه که به حال یه بخشی از اندلاب بودن، همیشه زنان بودن. دقیقا. ولی در نهایت پشتشون خالی شد وقتی که یک خواسته ای داشتن که مخصوص در واقع یه جوری زنان. تارکت شد برای زنان. همه پشتشون رو خالی کردن. این خیلی درسته. میدونی یه،, یه علتش هم اینه که همونطور که قبلا گفتم یک نگاه به این که مثلا هجاب یک پارچه روی سره. در سایدی که از نبود و دیدیم که چه شد یعنی که اگه مثلا اون موقع فیم کردن که اصلا امکان نداره زن برگردن به عقب دیگه حالا یه هجام ممکنی داشته الان زن ها اصلا پلستارن نمیدارن قاضی هن، پنان هن، دقیقا و دیپلومات و اینا و دیگه مثلا ما که عقب که بر نمیگردیم همونطور که مثلا زمان خاتمی ما میگفتیم برقب بر گریم و برگشتیم ولی تو همون حد از هشت هشتمارس هم زنا یکی از شعارهاییم بود که ما برقب بر نمیگردیم درسته ولی همین دیگه ولی اون افرادی که اینو فکر نمی کرده یعنی بهش این نگاه عمیق رو نداشتن و اون موقع اصلا کسی رو این قضیه کار نمیکرد این اتفاق تو ایران افتاد تو ترکیه افتاد تو این کشورهای دور و ما حالا حتی مثلا تو عربستان ما الان فکر عربستان همیشه اینجوری بوده ولی عربستان هم در اون هم زمان که ما انقلاب شدین اگر اگه های اونجا رو ببینید فعالیت‌های زن‌ها اون‌ها رو ببینید حجاب آزادتر بوده، روابط آزادتر بوده و هی بدتر بدتر شده یعنی کاملاً این یعنی تأثیر گذاشته این روند اسلامگرایی در کل منطقه و کل جمعی خب، افغانستان هم بوده یکی از کارهای اولی که طالبان کرد هم همین مسئله هجاب آره. و ها اصلا به طور کلی بود دیگه دقیقا. دقیقا. اون افغانستان میگذ کشوری که به شدت عقب گرد کردش البته الان میتونم بگم بعضش از ما بهتر در قانونی, قانونی واقعا بعضش بهتر هستش ولی خب هنها به خاطر سالها جنگ و اینا خب بازم خیلی ناراحت کنند است که این همه سال جنگ داشته بازم ما داریم و از تقریبا به اونا برابر میشیم. روکرد حکومت ما بزن واقعا درجه دوه یعنی به این معنی که خب زنان رو با کنترل بشن زنان نباید بیشتر از این مقدار وارد بازار کار باشن زنان نباید بیشتر درست. مثلا ورزش علبت زنان نیست نمیدونم اشتغال و اون چیزا حالا اینا تو جامعه افغانستان هم وجود داره منته ها اقل این می‌بینیم که به سمت پروگرسیو بودن همین. دارن دقیقاً من همش دارم میگم میگم نگرش حکومت ما و سیاست‌گذاری‌های ما به این سمت سیاست‌گذاری اینو برعکسه یعنی مثلا دارست. سیاست اونا به این سمتی که ما خشونت خانگی رو کنترل کنیم. سیاست ما به این طرفه که طلاق رو سخت‌تر کنیم که زن‌ها بمونن تحت خشونت خانگی، اونا به این سم بیرن که ورزش رو کنن و مثلا یه جوری با از نوات بینرمه‌المه‌الی کمک بگیرن که مثلا مخال... یعنی با اون جو فرهنگی مخالفت کنن و مقاومت کنن. تو ایران برعکس خانواده‌ها دوست دارن بچه‌شون ورزش کنن، دخترشون بنم ورزش کنن ولی تا حد ممکن سنگ میندازن جلوشون، ازیتشون میکنن، خیلی قوانینی بعد جور میذارن برای حجاب، برای هر نوع مثلا ارتباطی با خارج و یعنی روی کردارو دارن میگم که مخالف دست. هستش و با علل همه اینها خب هر زنای هر دو جامعه دارن تلاششون رو میکنن و موفقیت خیلی زیادم به دست بردن. <تصفيق> و خب الان دقیقاً چهل ساله که جمهوری اسلامی به عنوان حکومتی که اومده جایگزین حکومت پهلوی شده یه در واقع علم آسمون کرده این بحث رو و اینقدر در واقع در موارش پروپاگاندا داشته و صحبت کرده که یک نگرش غلطی در بین مردم به وجود اومده به این معنی که تمام مردم ایران عاشق حجاب بودن حجابو دوست داشتن با حجاب کاملا راحت بودن و بخشی از فرهنگ بخشی بوده. از فرهنگ بوده و جدا شدنی نبوده و رضا اومده اونو به زور مردم و همه رو مجبور کرده که هجابشون رو در بیارن و با اگه که اون کارو نمی‌کرده مثلا از مردم جونشون رو از دست دادن برای اینکه از حجاب دفاع کنن اصلا اینطوری نبوده یعنی یعنی به این شدت نبوده ما اگه که برگردیم در طول تاریخ زنای فمینیست بسیار زیادی رو حالا اون که استفمینیست هم به خودشون نمیذاشتن ولی به هر حال زنای مدافع حقوق زنان زیادی رو ما میبینیم که علیه حجاب فعالیت می‌کردن، مطلب می‌نوشتند، شعر می‌سرودند، شعره خیلی جالب ما خیلیش رو تو سایت منتشر کردیم 100 سال 150 سال پیش اصلا قبل از زمان رضاخان یا در در در, در, در, در دوران رضاخان هم این زنها فعالیت می کردن و می که هجاب کفن زنه حجاب گور زنه هجاب قفص زنه و چرا زن باید تو قفس باشه مگه مرد مثلا یه گرگ وحشیه مگه زن بررس؟ و این اشعار خیلی خیلی جالب و رادیکال رو ما می بینیم که اون زمان می گفتن که همین الان اگه شما مينا رو بگیم بهتون میگن شما اسلاموفویه دارید ولی اون موقع اینا رو خیلی راحت میده نه،, نه خیلی راحت مزورم اینه که با اتفاقا با تمام اون سختی هایی که اون موقع داشته و به حال به عنوان یک زن آره باید واقعا با, با ایمان به اینکه که این درسته و زن نباید حجاب داشته باشه و خب ما میبینیم که زنهایی بودن در توی تاریخ که کشف حجاب کردن تاهر قورتال این بوده که خب ما تو بخش زیادی یعنی از یک زمانی به بعد در خیلی از بخش های ایران صورت رو هم می پوشوندن خب مثلا چهره شو نشون میده که خود چهره نشون دادن اون موقع به معنی خیلی کار چیزی بوده رادیکالی بوده و یا توی مصر یک فردی باز اونم یه فمینیست مصری این روستریش و هجابش حجابشو در میره میندازه توی آب و در واقع زنای مسلمان ایران وقت غیر غیر غیر ایران با حجاب مخالفت میکردن حالا اینم بگیم که شاید خیلی‌ها بگن که خیلی موارد اندک بوده مسئله موارد اندک نبوده مثلا که هیچ وقت تاریخ زنان نوشتم نشده دیگه حالا آره. اگه کسی هم می‌رفته اعتراض می‌کرده کسی چیزی نمی‌گفت یا این همه‌ی سال‌ها همه‌ی این هزاران زنی که خودسوزی کردن خودکشی کردن خودشون از یه جایی انداختم پایین کسی نه اسمشون رو نوشته نه شمارشون نه جایی شون... هست آره، همین. و برای همینه که خب تحلیل جامعه شناسا مهم هستش تحلیل مردم شناسا که از اون دوره تاریخی اون شواهدی که دارن چی بهشون میده درست. حالا برگ... این نکته ای که گفتی خیلی نکته مهمی بود چون خیلی ام پرپگاندا اینو ولی برگردیم به ایران ماسر یا نه هنوز می‌خای که اونجا چیز دیگه‌ای داری بک؟ یه خورده دیگه می‌خواستم بگم که مثلا ما توی خود ایران هم ام، ام، ام، تا سالهای سال یعنی تا قبل از انقلاب به طور خاص که امروز اجباری نشده بود ما در بخش‌های از مثلا اون اشایر یا زنای شمال یا حتی من شنیدم همین الان یک روستایی هست خیلی دوست داشتم دارم ایران ببینم یه روزی. که همین الان طرف ارومیه و میری هیچکس حجاب نداره اینا هم باز دارم میخوام به عنوان این که بگم چقدر تنوع حتی وجود داره همین الان هم و قبل از انقلاب که قبل،, قبل از اینکه در واقع یک مجوزات رسمی داشته باشه ما اگه بخوام بگیم که یک فرهنگه حتی فرهنگ یعنی نمیتونه فرهنگ همیشگی باشه خب، فرهنگ رسول خب خب سالها دقیقاً یعنی اینکه نشد حرف که زنده زنده بگور کردن دخترام یه روزی فرهنگ بود همین دقیقاً یعنی خب حالا اگه بخوایم دوباره باز برگردیم میخوام بگم که یعنی ادامه بدیم این ماجرا این بعد سیاسی حجابه و اینکه حالا الان تو امروزه حالا بعد از چهل سال که جمهوری اسلامی در واقع حکومت مرکزی ایران بوده این بعد جدیدی که در واقع حجاب یه جوری پیدا کرد یا تثبیت شده در واقع توی این به عنوان نقش پرچم سیاسی که توی ایران به طور خصوصی به طور خاص داشته و بعد اینکه این چطور توی حالا با دست, در دست رست قرار گرفتن اینترنت و اینستاگرام و فیسبوک و این جور چیزا چطور این در واقع یک چالش جدیدی یه فصل جدیدی شروع شد توی همه این کشمکش هایی که در واقع مردم با با دارن و بحث دیگه که به نظر من مهم حالا در این ماجرای توی باب فرهنگ بگیم فرهنگ‌ها فرهنگ یک چیزیه که خودش در خودش رشد می‌کنه زایش می‌کنه ادامه پیدا می‌کنه جذب میشه اضافه هم. میشه حتی اگه ما بگیم یک روزی حجاب به اون صورتی که جمهوری اسلامی یا خیلی‌ها که بهش اعتقاد دارن میخوام تصویر بکنن که این به اون حد و به اون شکلی که اینا میخوام بگن بخشی از فرهنگ ایران بوده این فرهنگ دیگه وجود نداره یا این خواست در این فرهنگ دیگه وجود نداره و این به یک شکل دیگه ای در اومده یعنی این همه حجم از میلیون ها دختری که توی ایران نمیخوان هجاب سرشون کنن یا با, با آتوریته هایی که هجاب رو میخوان برشون اجبار کنن مبارزه میکنن یا روی اینترنت زندگی دیگه ای دارن زندگی بدون هجابی دارن یا در فضای خصوصیشون زندگی بدون هجاب دارن اینا در واقع خب فرهنگ از همین آدما داره شکل میگیره و اینا در واقع این فرهنگ تغییر کرده در ذهن این آدما و جور دیگه بوده اینکه حالا ما بخوایم دوباره همون فرهنگ رو بیایم بهشون به بهشون قالب کنیم بگیم نه این فرهنگ این بوده یعنی این دیگه یه جوری ما داریم خودمون رو به اون راه میزنیم و راجبش داریم خودمون رو کوچه علی چپ میزنیم حالا یه چیز تو پرانتزی بود ولی حجاب به نظر میاد که توی... خلا ام ام اگه بگو. تا نرفته سراغ بحث بعدی میبینیم توی اصلا فر تعریف فرهنگ به این معنیه که مجموعه ای از هنر، موسیقی، روابط، جشنها، مفاهیم یعنی یک چیز مجموعه از اینا در یک زمان مشخص این میشه فرهنگ خوب یعنی فرهنگ این چیز صالید، چیز جامد نیست، چیز سیاله. ام. فرهنگ الان ایران با فرهنگ 50 سال پیش ایران نمیتونیم بگیم ما فرهنگ ایرانی، نه، ما فرهنگ ایرانی نداریم. ما نمیتونیم بگیم مثلا فرهنگ چه می‌دونم غربی، حتی فرهنگ غربی هم نداریم. با اینکه الان عوض میشه. ما برای همین هستش که این خیلی مهمه. ما در واقع یک بخش مهمی که باید تو فرهنگ باشه، همون لایف یا سبک زندگی هست. بی‌معنی که یا عرف، بحث عرف هم همی هستش، حالا فکرم کاستم بهش میگن تو انگلیسی، یعنی که شما اگه که الان مثلا عرف هستش که دختر و پسر مثلا با هم دارن را راحت چیز میکنن مثلا رابطه برقرار یعنی رابطه معمولی دارن با هم دوست هستن، پس این عرفه و این یعنی که دیگه این نباید جرم باشه درسته. شما اگه این چیزی که عرف هست و مردم بیشتر مردمت باش مشکل نه داره جرم تلقی میکنی شما داری خلاف عرف عمل میکنی و این در واقع خلاف عمل کرده قانونه درست. یا مثلا وقتی یعنی قانون خودش رو زیر سوال می‌بری یا وقتی که همه مردم موسیقی رو یه چیز عادی می‌دونن و شما موسیقی رو حرام اعلام می‌کنی و آموزشش رو حرام اعلام می‌کنی و پخشش رو نشون دادنش رو ممنوع می‌کنی یعنی شما داری خلاف عرف عمل می‌کنی حالا این عرف همینطوری تغییر می‌کنه و اگه که الان جامعه ما بعضش اینه برای اینه که این هم مقامت حکومتی در مقابلش بوده شاید اگه این نبود الان ما کاملا یک یه حجاب یه ای داشتیم آره. یه دیگه ای داشتیم و اون زمان چیز هم زمانی که در قبل از انقلاب ما می‌بینیم که خب مثلا حکومت به طور حالا هدفمند و خب خو هدف خوب البته که مثلا سعی کردش که رفع یه یا با تشویق همراه باشه مثلا با اینکه مثلا طرف ورزش کنن یا مثلا برن شنا کنن یا کوه برن برمان مشترک حالا که جمهوریتون با همه اینا به طور خاص داره مقابله می‌کنه به بهانه حجاب دقیقا آره دیگه این همه اینا وجود داره حالا به ب... خاطر زمان میخوام برگردیم به این مسئله حجاب امروز و آه. اگه بتونیم رپاپ کنیم آه... میخوام بگم که این بحث این راجع این حرف زنیم که این بعد سیاسی جدید سیاسی که در واقع حجاب امروز توی جمهوری اسلامی پیدا کرده و مقابله هایی که دارین میبینیم و اینکه در واقع چطور مقابله با حجاب یک جوری حالا من میفهمم بیشتر از اون که کسایی که خودشون میخوان با مقابله با حجاب بکنن از طرف حکومت یک جور مقابله با کل ساختار داره شناخته میشه دقیقا. خب ببینین به دلایلی که نسبتا به چندشون اشاره کردیم جمهوری اسلامی حجاب رو خودش با دست خودش تبدیل کرد به یک چالش بزرگ برای خودش و به یک اینکه به یک وجوه مهم هویت خودش و یه جوری این رو گره زد با خون شهدا با اعتقاد به اسلام با اعتقاد به حکومت با تبعیت از رهبری با مشت مکم زدن به استکبار هزار تا معنی اجتماعی و سیاسی و فرهنگی و غیرت و ناموس و همه اینا رو روش بار کرد و خب الان و با این روند فضاینده اعتقادی به حجاب تمام این ایدولوژیش زیر سوال رفت و دید هر روز داره در واقع این مثل یک موریانه داره میخور پایه هاشو و و مردم دارن یه جورایی میخندن به همه این تبلیغات یه جوری شده جوک مثلا و خب پکردش که به جایی که بیاد حالا با واقعیت مواجه بشه به جایی که بیاد تصدیح کنه کارش رو به جایی که بیاد فکر که خب مثلا ما میگیم چه جوری این اشتباهو برگردونیم برعکس بیشتر و بیشتر با گشت, با با گشت, گشت ارشاد. ارشاد با گشت ارشاد یک سطحی ترین و کمترین چیزیه که شما از کاره حکومت میتونیم ببینید و به شدت از همه طریق از طریق شماها ببینین تلویزیون نمیدونم اشتباه کردن از, از, از, از همه جوره دقیقا از اینکه مثلا یه سری آدمای خاص با فرهنگ خاص با افکار خاص استفاده کنن این که همه این گذینش بله گذینش ها خیلی مهم هستن گذینش هایی که برای به خصوص معلمان الان تصفیه تقریبا میشه گفت در صد درصد انجام شده در مدارس و دیگه اون نسلی که نسبتاً لیبرال بودن و آزاداندیش بودن که در اول انقلاب ما هنوز که نسلی ما که اون موقع مدرسه میرفتیم یه چیزایی ازشون گاهی میشنیدیم دیگه وجود نداره دیگه هر گونه در واقع زنانگی یا مثلا توجه به بدن خود یا توجه به جنس مخالف یا توجه به حالا به قول خود فرهنگی فرهنگ قرب همه اینا مزمومه همه اینا خلاف زن بودنه همه اینا نشوندندهه ما اخیرا یکی نوشته بود به نازم ما به ما میگفتش که شما اگه که موهای لب و ابرو و پشت لبتون رو برد اندازه ما که دختر نیستیم یعنی ببینین اصلا یک چندین لایست این خیلی خیلی, یعنی خیلی زیاد دقیقا <تصفح> یعنی حجاب رو بسیار بسیار شدیدن در همه سوراخ های فرهنگی و سیاسی و اقتصادی اینا رو نفوذ دادن که شما هیچ راهی ندارین از این فرار کنین شما اگه که یک فرد غیر معتقد به هجاب باشین کاملا منظوی میشین در این حکومت امه. کاملا یعنی یا مثل خیلی هزاران زن یا که یا جرمنگاری, جرمنگاری میشه یا افکارتون تبدیل به جرم میشه جرمنگاری میشین <تصفح> <جو>، <تصفح> کارتون رو دست میدین موقعتون رو ندست یا به اندازه کافی پیشرفت نمیکنین یا منظوی <تصفح> میشین یا مجبور به خروج از کشور میشین خب اینا همه حزینهایی که زنها الان دارن میدن ولی خب از اون طرف هم حال ما کمیت رو نمیتونیم نادیده بگیریم هر چی باشه ما الان چهل میلیون زن داریم توی ایران و این چهل میلیون حالا ما بگیم مثلا ده میلیونش هم بخوان بیان یک حرکتی از یک حرکت مینیموم از خودشون نشون بدن ده میلیونه یعنی جوری آه. هست که به حال حکومت هر کاری بکنه نمیتونه و نتونسته شما می‌بینید الان مثلا یه زمانی زنا گفتن که ما تو ماشین روسری در می‌رینید رد می‌شیم پلیس تا بخواد ما رو پیدا کنه ما رفتیم حالا میون از دوربین‌ها یعنی از لوازم مدرن استفاده می‌کنن برای اینکه زنا رو مثلا بیان محدود کنه توی ماشین این ماشینتون رو در بیاره و بودت این ای نمونه کی بود که کار به توفنگ و اسلحه و اصلا آره آره, آره، دقیقاً آره یعنی تفنگ یعنی این, این دیگه جدیدترین چیزی که الان می‌بینیم که اسلحه می‌کشن یا هوایی زده بودن مورد که تو گاشته اشات گرفته بودنشون خیلی کار داره این تیر هوایی میکنه. خیلی چیز خطرناکی یعنی آدم هایی بودن که از تیر هوای مردن حالا من تو پرانتز بگم همین حالا جدا از مرده اصلا خیلی یعنی واقعا وحشتناکه برای بحث حجاب که یه چیز نه اسلام یعنی میگم اجباری تو اسلام هم نیستش بعدم شما اصلا هر, هر تا مثلا شما اگه کسی جرمی کرده میگم بیا تو فلان دادگاه اونجا چیز میکنی اصلا این دارید. چیزه این یک لیول جدیدی از هر جمرد و, و بعد کامپلکسیتی مرد سالاری تهدید شدن مرد سالاری رو تو تو اون لحظه ببین که, سر، که اون حالا چه میدونم هر هرکی که هست به این نقطه میرسه که باید تثبیت بکنه مم. با خشن ترین کاری که میتونه از خودش برمیاد که احتمالاً بر اساس هر قانونی بهش نگاه کنی چیز غیر قانونیه تو نمیتونیم اونجوری تیره هوایی بزنید تو سر مردم نه ببینیم مثلا الان میان دخترا رو نگه میدارن تو ماشین ازشون مثلا سوال می این این خیلیه نمیدونه این غیر قانونیه دارد. اگه که پلیسی کسی رو نگه داره دلیل موجه ناشته باشه خودش جرم مرتکب شده حالا باز برگردیم به چیز الان گفتی که مثلا اون زیر سال رفتن آتوریته مرسالاری مر و اینا مثلا از جنگ روی بودش که پرتش آه. کرد اون دیگه توی کن اصلا یک صحنه واقعا نمادین آره. استنبولی آره کاملا این که اصلا یک زن میره اون بالا و هرچی بهش میگه بیا پایین نمیاد <تصفيق> و اونو انقدر عصبانیش میکنه عصبیش میکنه که میره بالا و پل پر... میده, میده. یعنی مثلا بچه ها کاملا ولی این درون حد ببین یعنی اون مرد اون مسکولنتیش تا اینجا تهدید شده ها یعنی اصلا تا به این به این نقطه رسیده که اتوریتیش تا اینجا تهدید شده که حاضر جون این آدم هر به خطه آره. هم حاضر یک آدمی رو از یک ارتفاع پرد کنه پایین آره. در حالی که داره مجری قانون هم هسته اونجا داره لباس قانونم پوشیده یعنی مثلا یعنی اینه که داره. مثلا همین کنار واری میستاد برها اون آدم بگیر زمانی میاد پایین دیگه هر زمان میاد پایین دستگیرش میگن چون یوری اون تکه نشده بسیده بس بس <تصفح> بس نمیشه و خب یه مقدارم خیلی از این چیزها اگه مردم بدونن در مورد حقوقشون راحت تر هم میتونن باقامت کنن همین مقدارم هم کلامو داریم میبینیم باز به خاطر اینکه حقوقشون خب میدونن خب در نهایت حقوق ببین کسی که حقوق را هم میدونه را, را زندان میکنه. وقتی وکیل رو زندان میکنن تو دیگه اصلا حقوقت میدونه نه به این معنی که نه آخه نه،, نه کاملا تاثیر داره بیرین تو کاره. غیر قانونی انجام میدی ببین من خودم تجربه امینه که من دفعه اول که چیز شدم بازداشت شدم و بازجویی شدم چند روز قبلش یه کارگاه شرکت کرده بودم که در مورد حقوق شهروندی بود و تو اون کارگاه واقعا من چیزای جدید متوجه شدم مثلا اینکه شما اگه میرن اونجا میریم باید, باید بب... ازشون بپرسی که جرمم چیه نمیتونه همینطوری نگن جرمت چیه و وقتی گفتن جرمت چیه یعنی اتهامت در اتهام چی فقط نامون اون اتهامیتون نام ازت سوال کنن و من این این خیلی بهم کمک کرد گفتم شما من نگفتین منم منو من به جرم چیز گرفتین دیگه ترجمه غیرقانونی چرا در مورد سفرام دارین میپرسین از من چرا در مورد روابطم با فلانی دارین میپرسین میدونید دیگه جواب نمیدادم این مسئله حجاب تبدیل شده به یک چیزی که انگار بزرگترین چالشی که الان امروز وجود داره هم مساله حجاب یا اون مسئله دختران انقلاب با این داستاناست که میبینیم مثلا یک جوری فضا رو کلا رو عوض میکنه امه. وقتی که اتفاقات اینطوری میفته اصلا فضای اجتماعی تو ایران عوض میشه لندسکپ فهم جمهوری اسلامی از خودش و فهم مردم از جمهوری اسلامی تغییر میکنه نظر من و این اهمیتشونشون میده و قدرتی که الان واقعا زنها توی, توی ایران توی فضای بسته ایران دارن با همه فشارهایی ام. که در واقع یه جوری عملکرد برعکس داشت اونجوری که گفتی ام. همه اون فشارهایی که گذاشتن یه جوری توی یک عمل کرده برعکسی یک عملیت عجیبی به داد که خیلی. در نهایت بلی به قول اینا کارش میافته گردن زنها دیگه کارش رو باید زنها الان ببینی مثلا شاپرک یک زن معمولی بوده و دو سال اینطور که میگه مثلا هر روز میرفته توی خیابون خلوتی روزش رو در میورده اکس فیلم میگرفته میفرستاده برای مسیح بعدش حالا به هر طریق اینو بازاشش میکنن چند بار رو اینا و بهش حکم بسانن 20 سال زندان 20 سال بودش نمیدوم چند سال بوده خب تعلیقی بود چیز خ... خیلی آره نه دارم میگم ببینین یک زن عادی تبدیل میشه به یک تهدید بزرگ برای اینا و چه حکم برایش تادر میکنه برای یک عمل, عمل خیلی خیلی ساده و اینو باید بفنید یعنی این تقصیر حالا بعضی آخه اومدن خیلی به شاپرک باید گفتن که نه این حالا حکمش خیلی هم حکم مهمی مهم نبوده و نمیدونم و خیلی, خیلی عجیب آخه ببینید آخه حکم زندان برای درباردن روسری برای باید برای ما عجیب باشه برای ما زیاد باشه ما نمیدانیم واقعا مردم ما در یک سطحی وقتی که اندازه سیاسی با یک جریانی مخالفت میکنن مخالفت دارن ا حالا اجتماعی و ایناشو در نظر نمیگیرن، ابعاد سیاسیشو در نظر نمیگن که از اون نظر شما اگه با این آدم از سیاسی مخالفی ولی مگه با جمهوری اسلامی مخالف نیستی؟ شما اینجا ببینیم که جمهوری اسلامی داره بیشتر یا اصلا جمهوری اسلامی بهش مگه با ظلم مخالف نیستی؟ آقا داره زور گفته میشه به اینا. آره جمهوری اسلامی به عنوان کسی که داره ظلم می‌کنه، واگرنه اگه جمهوری اسلامی گوغولی بود که ما باش کاری نداشتیم. <تصفح> <تصفح> جمهوری اسلامی گوغولی. ولی موضوع ایناست که مثلا الان نسیم ستوده دقیقا به خاطر که ورده قضیه حجاب شد، اگه اگه که اینا و بکالت این بچه رو بچه اینقلاب و دختنان اینقلاب به احده نمی گرفت که این بلا رسرش نمی آوردن قشنگ گفتن نه تو دیگه در باید خط و نشونی بوده خط و نشون برای, برای همه مثلا الان هیچ کس دیگه این چيزا رو قبول نمی کنه. یعنی تو ایران به شدت وکلا اصلا حالا حقوق بشری رو که هیچی به طور خاص حجاب رو قبول نمیکنه یک یک سرفصل جدیدی در مسئله حقوق بشه یعنی زندانی کردن یک وکیل برای آره. انجام کار به خاطر اینکه آره. برای کاری که کاری فقط از جمهوری اسلامی برمیاد <laughs> یعنی اصلا این خودش یک لول جدیدیه آره. حالا دیگه خیلی طولانی شد حرفمون ولی میتونید یک ساعت خورده ایم او. آره آخر یک بحث چیزیه تازه من یادم افتاد که حالا یه چیز دیگه یک بحث آه. خود اصر هم باید درمواره در صحبت کنیم ولی حالا دفعه بعد دیگه اصلا چی شد؟ درمواره خود هجاب که مثلا چه؟ در نظر فمینیستی تو... از چجار؟ <تصفيق> جهت کنترل بدن آه. جهت آه. آه. آره آره آره همه اون سکشل... چیزایی که میاره درسته میتونیم دفعه بعدم دوباره میخواستیم راجع به این حرف بزنیم می‌خواستیم در مورد حجاب و اسلام حرسی حرف بزنیم حالا میتونیم یه ذره در مورد اون کنترل بدن و این صحبت‌ها آره اتفاقاً به هم مربوط میشه آره, آره. حالا به هر حال می‌تونیم پادکست رو روی آیتونز گوش بدین روی وبسایت روز روزمره فیسبوک اینستاگرام کانال تلگرام و ما سعی می‌کنیم که فایل اودیوش هم توی کانال تلگرام پخش بکنیم بتونین اونجا دانلود بکنین و گوش بدین کامنتاتونو، سوالات، نظرات، قور یا هر چیز ای که میخواییم بفرستین و از طریق همه این چنل ها میتونین بفرستین به فیانیزم روز مره و مستمی کنیم که توی پادکست بعدی بهشون جواب بدیم و واکنش نشون بدیم یا بخونیمشون و اگه میخواین چیزی برامون بفرستین که اینجا بخونیم راجع به حجاب هست چون دفعه دیگه هم در به حجاب حرف میزنیم حتما این کار بکنین از همین کانال ها میتون استفاده کنید اگه رول ریویو بکنین توی آیتونز خیلی کمک میکنه که آدم‌های دیگه هم بتونن بیشتر به ما گوش بدن و شیر بکنید با کسای دیگه که فکر می‌کنین این بحث می‌تونه بهشون کمک بکنه پادکست رو به اشتراک بذارین و امیدواریم که خیلی زود برگردیم و باز این بحث رو ادامه بدیم مرسی ممنون از همه خواهد دفعه